بحث ما در این جهت بود که ما در زمان خودمون که الان زمان غیبت هست ما باید وظائفمون رو از چه منبع و معخذی اخذ کنیم و بحث ما راجع به قضیه امامت به اینجا رسید این <تصفح> که الان بحث امامت برای ما همه الان که زمان قیبت امام سلام الله علیه هست بحث امامت برای ما الان اون رو داره, داره که ما وضاعف رو از چی منبع و معخضی باید بگیریم آیا کی روشش و سیرهاش برای ما میزان است و حجت است دنبال عملی سیره عملی کی باید بریم گفتار کی رو باید بپسندیم تب از شد این که قبول کنیم دنبالش بریم و خلاصه قول کی و فعل کی و تقریر کی برای ما است. آیا فتوای عبی هنیفه و شافعی و همبلی در مسائل تکلیفی برای ما حجته بر احکام آیا اقاعد معتزله و اشاعره برای ما متبعه بحث ما دارید بود که ما میگیم بحث امامت الان برای ما سمر داره ما عقاعد میگه از کی باید اخذ کنیم و رضائف و احکام را از چه منبعی باید به دست بیاریم بحث ما این بود ما شرایط امامت را قبلا بحث کرده بودیم و گذاشته است و شرایطی که برای امام معین کردیم دیگه نمیخوام معتلتون کنم چون سفتین دیگه شرائطی که برای امام معیم کردیم این شرایط را کسی نمیتواند تشخیص بدهد مگر خدای تعالی یا پیغمبر از جانب خدا که یکی از شرایطش قسمت بود که وجهش رو عرض کردیم آیا کی اصومه و کی میتواند تشخیص بدهد که این آقا معصوم هست یا نیست این رو کسی نمیتون داشت حسوده باید خدا معین کنه. قهرن تعیین امام بر خدای تعالی است و اون مطلب همش گفته شده یا نمیخوام تکرارش بکنم بنابراین ما امام را باید به وسیله خدای تعالی و به وسیله نصی از رسول الله و علیه و علیه بکنیم قبلا در اون هفته قبلی ارز کردیم اما دوتا روایت ارز کردم برای شما که از روایات متواتره بین شیعه و سنیز و این روایت دوتای روایتی که ارز کردیم یکی روایت سقلنگ بود که این تارکونفی کو سقلن کتاب الله و اطریتم اهل بیتی، ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا و انهما لن يفترقا حتى يردوا علی یم رو سر روایاته سقلن قبلا امر شد روایتی دیگری که روایت سفینه بود مثل و اهل بیتی که سفینه تنیر من رکبه نجا و من تخلف انها قرق این دو طلبایت رو قبلن ارز کردیم سندش رو ارز کردیم متواتر بین شیع و و این میده تخلف از اهل بیت است و هلاکت و میدرماید این با قرآن اهل بیت با قرآن انفکاک ندارند اگر این دو, تا با هم، این دو تا از هم جدایی ندارند تا روز قیامت بنابراین اگر من از اینها عقص کنم در حقیقت به قرآن عقص کردن و اگر از غیر اینها عقص کنم برای من حلاکت است این دو تا حدیث رو قبلن عرض کردیم و تمام شده حدیث ثبیه ما این شب اینه و این روایت رو نقل کردن که رسول الله صلوه علیه و علی فرمده است با درباره امیر المؤمنین صلوات الله علی انت من به منزلت حارونا من منصا بلا بل انه لا نبی بعدی تو یا علی تو نسبت به من مانند حارون نسبت به موسی فقط تفاوت این دوتا این است که بعد از من پیغمبری نیست یعنی به این معنا مفاده این رقایت میشه که اون چرا که هارون سلام الله علیه که یکی از پیغمبرهای خداست و جعلنا تو قرآن دارد به این که و و آتینا هم رحمتنا اخاه حارون نبیه و موسا میرا در باره موسا مرد وذکرد خیلی کتاب موسا اینهو کان مخلصا و کان رسولا نبیه و نادن من جانب تور الایمن و قربناه و الوحب نالهون رحمتنا اخاه هارون نبیان هارون هم پیغمبر بود رسول خدا ساوالی علیه علی می فرمد یا علی تو نسبتت به من مثل نسبت هارون است با موسی فقط همین کلمه تفاوته که هارون پیغمبر بود ولی تو پیغمبر نیستی معنی این جمله این است که تمام شعون و تمام کمالات و تمام صفاتی که برای هارون ثابت بود برای تو هم هست فقط نبوت نیست این روایت اون روایت اولی اسمش روایت اون روایت دومی روایت سفینه این روایت تو اصطلاح علمه روایت منزله هست انتمنی به منزلت حارون اون روایت منزله این که قبلا نرز کردیم روایتی که در باب امامت وارد بشود حتما باید متواتر باشه یک دونه و دوتا و ستا و تا فایده نداره زیرا امامت جز به اصول دین است و اصول عقاعد است و در اصول یقین لازمه. پس خبر باید متواتر باشه. و این خبر منزلت از روایات متواتره بین آمه و خواسته من اون هفته قبلش که ارز کردم من خودم کتاب عبقات ندارم کتاب با عبقاتم شاید اصلا نسخشم کم باشه چاپ شده ولی نسخشم شاید کم باشه ولی احتمالا ارز میکنم شاید یه جند در اطراف حدیث منزله کسانی <تص> <تص> که این روایت رو نقل کردن از آمنه و سنی ها از می دیم که شرف الدین این آقای بزرگوار که در المراجعات اگر مراجعه بفرمونید این روایت رو نقل کنه و این بزرگوار از شاید ده کتاب معتبر مثل صحیح بخاری صحیح مسلم و شاید مسنود احمد و جمعه و کی و کی و کی شاید به ده سند معتبر این بزرگوار از طرق آمنه این روایت رو نقل میکنی در المراجعات مرحوم از این بهرانی که عرض کردیم صاحب قایت المرام است و صاحب تفسیر برهان این قایت المرام از این کتاب های خیلی زحمت کشیده از کتاب های نفیسه به بحث امامت هست یه دونه روایت رو یا یه دونه آیه رو که در شعن امیر میگه اینا از طرق شیعه تا روایت داریم از طرق سنیو چندتا روایت داریم این روایت به خصوص رو به سد سند نقل میکنه هفتاد تاشمال شیعه ست تاشمال سنیو که ست تریق سنیوها این روایت رو نرد کردن مثلا اهل بیتی که صفی رو تنیو البته یک تطنیمی داره که حالا ارز کنم اون تطنیمش هم ارز میکنه ست و هفتاد تریق اون بزرگیوار رو نرد میکنه مرهول مجلسی از ممولات حالا علیه شاید خوبش چهل تا پنجاه تا حدیث در این نقل میکنه بعدنم اسم اده از علمای سنی ها که نقل این روایت کردن میشموره اده زیادی از علمای آمه که نقل این روایت کردن اسمهای مرزه که میکنه دیگه همه رو نقل, نقل نمیکنه میگه فلانی در کتاب فلان فلانی در کتاب فلان, فلان فلانی از کرده محفظه این چیزا فحص میخواد فقط ما اعتمادی که به مثل عبقات داریم و اعتمادی که به قایت داریم مثل اعتمادی که به مرحوم امرونی رضوان الله تعالی علیه داریم اینا نقل کردن این جوایات شد علا از اون است که سندش جای تردید نیست قضیه که شاید همه نقل کردن قضیه یه تبوکه <تصفيق> که جمع اومدن خبر دزن به رسول الله و و علیه و علی، که روم که همین شان الان شاید باشه که یعنی مرکزشون بوده روم جمعیتی ولشگری جمع کرده و میخواد به شما و ولشگری اسلام حمله کنه پیغمه الله علیه وآله علی خبر کرد مسلمانها رو و در هوای خیلی گرمی بود و از مثال نام خیلی مختل بود یعنی از نظر مالی خیلی بایدش اونجور نبود علاوه کلها جمعیت زیادی هم لازم بود با دعتا و بیستا و کار کارده یعنی شده قید جنی برداره اونجا مخوند بالشگره درون با رون جن کنن کلاسه با یکی از این یعنی شاید مهمترین مملکت در اون عرض شاید سی هزار مسلمان جام شدن نه <تصفيق> منالا قضیه های خصوصیاتش رو خودم بلد نیستم خیلی باید مراجعه کنم و چیزایی که یادم آلا نمیخوام به شما کنم چون اون به ما الان نیست تناشد مسلمان ها را میفتن و برن برای جنگ طبول از طرفی به رسول الله صلی الله علی علیه خبر رسید که ادهی از منافقین تصمیم گرفتن شما که از مدین رفتیم بیرون به قوله خودمون کودتا ک تو رو فلوک کنن به هم بزنن و خلاصه مطلب از شود به اینکه که ادهی رو شاید بکشند و ادهی رو چهار کنن شود. رسول الله خوالی و علی امیر المومن رو گفت بدین بموند نصب یاد علی رو به جای خودش خودش هم راف داد و رفت برای طبوش فرمود بموند مدینه و تو قلاصه قومت اسلامی را فیلن نداره کنم این من فقط این دیدن شو نقشه ای که گرشده بودن حال شد یا علی اینجا که دیم نمیشه کاری انجام داد این مطلب رو در بین مردم منتشر کردم که به تعبیر بنده از میکنم بین علی و پیغمبر میانشون به هم خورده و لزه از که پیغمبر علی رندفی نبورده چه هم؟ این بین مردم منتشر کرد امیر این سالان و علا این خبر بکشنی پیغمبر آلا مصرم پنج فرصه دو فرصه چند فرصه با سرعت رفت و این جریان رو به رسول الله عرض کرد و عرض کرد یا رسول الله رو در مدینه میذاری و حال این که اینها این چنین مطلبی رو منتشر کردن فرمود یا علی اما ترزا آیا دوست نداری که عبارت روایت اینه. اما ترزا ان تكون نمید من به منزلت من نوسا آیا دوست نداری که تو از نسبت به من مانند هارون باشی نسبت به نوسا الا انهو لا نبی بعدی و انهو لا ینبدی ان اذهب الا و انت خلیفتی تزاوار نیست و لایق نیست که من بروم و تو خلیفی من نباشی من نخواهم رفت مگر اینکه که تو را به عنوان خلافت تعیین کن جرانو تبوک رو نبی کن این روایت را سموشی شیعه هر کسی که تاریخ رسول الله رو نقل کرده و جنگ تبوک رو نقل کرده اندبایتنا. که امیر ایمانون رو پیغمبر فرمود اما ترزا انتکون امیر به منزلت حارون امیر من ایمسا الا ام نهولی سنویان بعدی و لا یم بقی سزاوار نیست برای من که من بردم و تو خلیفه من نباش اونم این شبیه به این این روایت تبوک ولی این روایت انتمنی به منزلت حارون امیر من فقط چون در تبوک گفته نشد مکرره بر مکرر به موارد مختلف پیغمبر این جمله رو فرموده ولی قضیه تبوک رو همه نقل کردن و قضیه غیر تبوک رو هم تو کتاب‌های سنی و پر تو کتاب‌های شیعه علما شامل که حالا اثبات می‌کنم قضیه تبوک و این جمله انتمینی به منزلت های تو کتابای که ملاحظه بفرمانی دشمنان امیرانانی نمی نقل کرد سعد و قص تو تفسیر برهان مراجعه بفرمانی که الان من صفحهاشو میخونم تو تفسیر برهان مراجعه بفرمایید در زیل آیه مباهله که آیه مباهله هم میخواستم این بگم ولی مرسیم که نمیرسیم میمونه برای هفته آیان ده انشاءالله در زیل آیه مباهله قضیه سعد وقص رو ذکر میکنم و قضیه سعد وقص اینه که معاویه به سعد وقص میگه سعد وقص از دوستان علیه ها بوده سعد وقص یکی از اصحاب رسول الله بوده و رئیس لشکر جنگ ایران بوده در سعده واقعی یکی از جنگهای ایران در زمان عمرو و نمونه خوبی با علی نرشته و پدر عمر سعده عمر ابن سعد عمر ابن سعده سر سعده, سعده, سعده وقاسه این همونه که امین و مومنین سلامی و علی شاید به عروف اینه که بالای نمبر فرمونه از قبل قبلا تسخدونی این همین سعده وقاس ظاهرن و از فاهین اون گفتش یا علی موای سر من چند و من به تو رو به آسمان آشناترم تا به تو رو بزنی. این از پایین گفت موای سر من چند تاست حضرت فرمود من اگر بخوام بگم میدانم و میتوانم ولیکن چیزی که هست این مطلبی رو به تو خبر میدم با اون مطلب این که در زیر هر مون تو شیطانیست که تو رو گمراه میکنه و تو پسری خواهی داشت که پسر من میکشه اول این آقا میرونش با این خوب نبود یه وقتی معاقی بهش میگه که تو چه مانی داره که سب کنی و بریم مثلا بالای منبر و سب کنی عبی تراب را گفت ساعد و قوس گفت سه چیز الان یادمه در باره علی از رسول سه چیز یادمه که آرزو میکنم یکی از اینا من من بود و این سه چیز اگر یکیش رو به من میدادن یکیش رو از نشاد به من میدادن ارزشش در نظر من بیش از این بود که تمام شطورهای سرخمو رو بمنددن شطور در عربستان خیلی ارزش داشت ولی سطور شطور سرخمو دیگه چه خصیصیتی داره که تو روایات زیاد داره علا کلها اون بخش سرخم کنه سه مطلب گفتن مطلب اول که از علی سراخ دارن این است که در جنگ خیبر یکی کسی رو فرستادن شکست خود دومی رو فرستادن شکست خود یا برگشت ترسی در و بعد پیغمبر فرمید لعوتیم و رایت قدم فردا این علم را و این پرچم را به دست کسی میدهم هم یه حبه و رسوله و یه الله و رسوله فردا رو غیر یک فردا شد همه منتظر بودن که پیغمبر به کی این پرچم رو میده بعد گفتش علی کجاست علی آمد در حالتی که چشم درد داشت خیرم بر آب دهان مبارک به چشم علی زد و علم رو او داده او رفت کرد خیبر را اینو که از است که من آرزو میکنم که علی رو همچی منصدی همچی مطلبی مطلب دومی که درباره علی من آیه مباهله است که وقتی با نصارای نجران میخواستند مباهله کنم، تعالب ندعو و ابنا انا و ابنا و ابن نسا و نسائ و انا و انفس و انفسنا و علی خدای تعالا به منزله نفس و جان پیغمبر قرار داده اگه زنده نینده اینشالله ای آینده همین آیه رو خواهم ارز کرد علی رو به منزله جان و نفس پیغمبر قرار داده این یکی از این چیزا بود که من دوست داشتم بعدا مطلب صدرم قضیه طبوت رو نقل میکنه که پیغمبر میخواست بره تبور به چنین حادثه اتفاق افتاد و فرمید اما ترزا انتکو نمیونی به منزلت حارو نمیونسا اون قضیه رو سعد و قص نامون میکنه برای معاویه و اون وقت معاویی هم میده خب با این دارید یه جداری دیگه معافش کرده از کردن امیر اینجا در اینجا مرحوم همون شرف الدین با رو تعالی تو المراجعات داره که سرد و قاسی حدیث رو نقل کرد که معاویه رد نکرد و بعد خود شرف الدین نه فقط معاویه رد نکرد خود معاویه هم این حدیث رو نقل کرده یک کسی آمد پیش معاویه گفت از یک مسئله از معاویه پرسید معاویه گفت برو از علی بپر این حالا یا از دوستان علی نبود یا برای خوش معاویه گفت جواب تو در نظر من مطلوبتر است از جواب علی گفت به قلت بعد گفتی معاویه گفتا گفت به سما قلت بعد گفتی لقد کره تر رجلن تو از یه مردی داری بدت میاد و كيف نمیکنیم یعنی از علی تو از یک کسی داری کراهت داری و کیف نمیکنی که کانا رسول الله صلی الله علیه و آله یغره به غرزا غزا پیغمبر ریخت اون رو به سر این ریختان وقد قال الله انتم من منزله هارون و موسی بهش فرمود تو به منزله هارونی برای من الا هو لا نبی بعدی و کان امر ازا اشکله الیه علیه اون اخزم نهی مابیده رو میگیره هر وقت امر گیر میکرد میرفت از علی میخوصی تو چی میگی؟ مطلوب مطلب چی بود؟ این بود که این روایت است که دشمنان امیرمان الله آموالی مثل معاویه و سعد و, و همسال زالد اینو تو کردن و مشی نقل میکنه همین دو قضیه سعد وقاص رو در تفسیر برهان نقل میکنه از کتاب سونیا اصخوتو بس بنابراین جوابتی است که از نظر سند جای تردید نیست انتم من منزله تحول ممنوع است این از نظر سند که رسول الله صلوات علیه تشریف مکلفی را قطعا فرمودند البته علیت که من در اش میکنم این مطلب واجب اصل فرموده رسول مطلب دیگر این است که خب این منزله حارون چی بوده که حالا علی به منزله حارونه چه های داشته علی چه سمت داشته حارون که حالا رسول الله میگه علی هم همون سمت رو داره اونا چی بوده اگه در همونجوره اجمالیش رو بخونم درست کنیم باید بگیم یه شد بگیم که کارون پیغمبری بوده و پیغمبر هر منصبی که داشته علی داره غیر از ما پیغمبر بوده تو آلم پیغمبر چه کارهایی رو انجام می پیغمبر اداره کننده حکومت اسلامی بوده بیان کننده احکام بوده بیان کننده عقاعد صحیح بوده جلگیری کننده از مفاسد دینی و برداشت های غلط بوده و تمام کارهایی که یک پیغمبر باید انجام بده انتا من نیگه منزلت حالی و نوسا ایلا نبی بعد. تمام اونها برای تو هست فقط نبوت برای تو نیست اگه اجمالش رو در نزار بگیریم میتونیم بگیم، پس بنابراین تمام شعور که برای یک پیغمبر هست اون تمام میشه اون برای علی هم هست قیز قضیه نگوبه یعنی واحی به اون نمیشه دستور تازه بر او نازل نمیشه من اونه و نهولا نبیه باید پس بنابراین ما میتوانیم به نفس همین آیه تمام شعوری که برای یک بیغمبره برای علی ثابت بکنیم خلافتم میشه ثابت کرد که ای جانشین و اداره کننده حکومت ولی الان ما در صدیل اون کلمه نیستیم ولی ما از کی باد بگیریم؟ وضعاتون از که بپرسیم؟ قول و فعل کی برای ما میزانیم؟ قول و فعل حارم به حارم پیغمبره خدا بوده این هم همون منزله رو داره فقط ده دوش نازل نمیشه پس تمام شعونی که برای هارون بوده برای علی ثابته این اجمالا و اگر به قرآن مراجعه کنیم هارون رو روی مقدارشو تو قرآن معین کرده خدا در بر قرآن می کنیم که ازم شد خطاب کردیم موسای که برو کن فرعون را قال رب اشرح لي صدري و سلی امری و اهل من لسان قولي قولی و اجعلی من اهلی حارم اخی اشتبهی به و اشتبهی في و که نسبه که کثیران یا نذکره که کثیران اونه که کن کردن بسیران یا خدا، خدایون تو سرش میدونید قال قد اوتی تسرق لکیانون این ساحت چی خواستی دادی ره اون که خواستی دادی وجعلی وزیران حارون اخی اشتد بهی عزری و اشرت خفی امری که نسبه که کسیدن من نذکره که کسیدن قال قد اوتی تسوالکه یا موسا ولقد منن نالکه مرکن اخراب لیکن آیه و قال موسا لأخیه و اصله ای برادر تو خلیفه من باش در قوم من و کارهای اونها رو تو اداره کن و اصلاح کن تو قرآن این چنین فرماید رو به عنوان وزیر موسی به عنوان مبین احکام موسی به عنوان کمک کننده و ناصر موسی به عنوان قائم و قاقیان کننده و برپا دارنده بر مرام موسا قرار داده و به عنوان خلیفه معرفی کرده دال موسی لعخیح و حارون اخلوف نیفیقه و اصلش ولا تب به سبیلن مفسدین این هم دو تا آیه و شاید آیات دیگری حدود از این شود فعالیت های حارون رو معین کرده که چیه؟ که حالا یه روایتی رو میخوند بنابراین انتان نمیده منزلت حارون من موسا حارون چی بوده و چه منصبایی داشته و چه کارهایی میتوانسته بکنه و چه کارهایی وزیفش بوده تمام اون که حارون میکرده برای علی ثابته فقط وحیب علی نمیشه بنابراین علی خلیفه رسول الله علی مبین احکام رسول الله علی وزیر رسول الله علی معین رسول الله علی یار و کمککار رسول الله تمومی که تو قرآنه پس بنابراین من میتونیم اون رو بگیریم الان من وزیفم رو از کی بپرسم و از کی بگیرم وجعلی وزیران من اهلی از وزیر رسول الله بگیر از کسی که مشارکه در امر رسول الله هست یعنی کارای او را انجام میده شریک در کار اوست هر کاری که اون میکنه اون میکنه او شریک مناشینه منطوری که شریک یعنی همکار هر کاری که او میکنه او میکنه, میکنه. اشریک خوفی امری بنابراین از اون بگیر هرچی از اون گرفتی از رسول الله گرفتی چون شریک رسول الله پس این فقط نبوت نیست تو کار یعنی وحی نازل نمیشه دستور خاص برای این نیست دستورات به رسول الله جاری شده و الهام رو شده و شد. شده این خود قرآن حدود فعالیت های حارم سلام الله علیه رو کرده و پس این روایت متغاطر سمی و شیعه این روایت ها رو خوب چکار بکنیم چه باید که اون کتابه سمی مردونی اون که بیانسافن نگم به هزهی روایتون به روایت ضعیف این بیچاراشتیه ها که از فرمی مثل عرقات و اینا نیشستن تمام این کتاب های سمیه رو و هر کسی که این روایات رو نقل کرده و ادوشتن نگشتن و این گفته های به هزهی روایتون ضعیفه این روایتون ضعیفه است تو صحیح بخاری موجوده تو صحیح مسلم موجوده تو کتب صحب خود این بخاری مخاری نام نه خود این از دشمنان ها متعصبی نمیرونی این نسان و این با خیلی مطلب سخت و خود سنا با انصاف حدیث سناغ کردن به یا ها حال احادیس نقل اقا به اون طور اقا میتواز این چه بکنه شیعه بیچاره؟ این از آنها پیدا کردن هر کی هست رسید بیدا کنه حق اینجا بست با نه مهم نیست این چیز مهم نیست پی اینکه اما این قصه برای جمعه این واقع شدم بیا که خود پر تو بلا بگه امتون همونی به منظورت و من نوسا الا انهو لا نبی یادی برای این که این خنوان یه اردار همونی برای این گفته پیغمبری ای رو بنابرای این برای خاطر همونی جدون حرف بزنی یک دنی و بین الله میخواد یه چیزی بگی جلو خدا حجب داشته باشه اگر مثلا من ارز میکنیم اون با این تو مؤخرات که این روایت که ارز کردم سنیان نقل کردم که زیده روایت این است که الان قول نمی شو. شد لا بدی از هب و انت خلیف الا و انت خلیفتی سزاوار نیست و این کار رو یعنی معنیش اینه که اگر من تو رو به عنوان خلافت نست نکرده باشم این لایق من نیست و من کار خلاف قاعده ای کردم اگر این روایت فقط در قضیه تبوک بود به گوستونیه میگه که این چیز مهم نیست علیه رو گذاشته کلنشون میگه بره. ولی نه انتا من نگو من فقط تو قضیه تبوک نیست مکرر در مکرر رسول الله این جمعه رو فرموده یه موردش که دو مورد در حقیقت باید گفت دو موردش قضیه اخا است و مراحات دو جا پیغمبر بین اصحاب ایجاد علقه برادری کرده و خبت بر مسلمان ایجاد کرده یکی قبل از هجرت در مکه و یکی بعد از هجرت در مدینه اون قضیه اسمش قضیه مواخات است این رو با هم برادر قرار داد دوتا دوتا پیغان باید به تعبیر بنده از رو کرد رو با هم جورشون کرد اینا رو با هم برادر قرار داد عویزک رو با عمر برادر قرار داد عثمان رو با عبدالرحمن ابن اوف برادر قرار داد کی با کی کی با کی همجورینا رو با هم برادر قرار داد همه رو برادر قرار داد ولی علی رو برادر با کسی قرار نداد تو روایت این چنین داری علی از میکند لقد زهب روحی و انقطع وحری هین رأی تو که فعلت به اصحابی که ما فعلت غیری از میکند یا رسول الله روح من به من پرواز کرد رفت پشت من شکست کاری کردی با همه اصحاب و اینا رو برادر قرار دادی و با من این مطلب رو برادری رو قرار ندادی با کسی فعلت به اصحاب چا ما فعلت و اگر من از من یک ناراحتی و بعدی دیدی دی مرا عرف کن علی عرض میکنند رسول الله صلی علیه و عمید یا علی و الذی بعثن بالحق قسم به با اون خدایی که مرا به حق مبعوث فرموده ما تو که الا لنفسی من تو رو با کسی برادر قرار ندادم تو رو گذاشتم با خودم برادر قرار بدم ما آخر تو که الا لنفسی انتن من نمید منزلت حارونم موسا من نوسا الا انهو لا نبی بعدی انت اخی و وارسی انتما في قصري في الجنه ما فاطمه سلام الله عليها ابنتي و اخي ورفيقي ثم تلاحظوا هذه الايه اخوانا على سرور متقابلين نقل خیلی آدم بکنه خیلی زیادی متاثر میشه خیلی متاثر میشه در یه مجلسی امین و سلام الله علیه فرمید انه عبدالله و اخو رسوله گفتن عبدالله رو قبول داریم اما اخو رسوله رو قبول نداریم خیلی آدم متاثر میشه برای زیاد خلاصه حال فرمو... فرمو... مقصود از غنسل این کلمه بود در دو مورد هم در مکه وقتی برادری ایجاد میکد بین اونسل اونها علی رو کنار بوداش بعدم گفت آخر سرطور با خودم برادر قرار دادم هم در مدینه و این جمله این که ارز کردم الان شاید نمیم الان در مکه این جنبه بود یا در مدینه هم که علی از کردی رسول الله رو در مکه اونتا بین مسلمانان مکه فقط که به قول خود بین مهاجرین فقط برادری ایجاد کرد ولی در مدینه مهاجر و انصار رو همه رو برادر قرار داد به جوری که مصلحت میدید بنابراین در این دو غزیه جاله یه غزیه حسابش کنید یا دو غزیه پیغمبر فرمود انت به منزلت حارون و من موسا پس مربوطه به قضیه طبو که فقط نیست که تو خونه ما رو نگه دادتا من برگردم نه نیست این گه بزیر دستور آمد از جانب قدای تعالی مسلمونا وقتی از مکه آمدند به مدینه جا نداشتن که عده ایشون رفتم خونه انصار اینا رو داشتن بردم خونه هاشون مرز میشه اهل مدینه درده دور مسجد رسول الله منزل کردن تو مسجد میریم بعدن دستور آمد که مسجد آن مسجد رو نمیتونی بگیریم بخوابین یا غال جنابت و امثال زاله باید از مسجد بریم بیرون رفتم گیرون مسجد یه اتاق ساخن اینو برخودش یه اتاق ساخن برخودش اما یه دهر تو مسجد را کن رفتم گیرونی مسجد یه اتاق ساخن اتاق برخودش نمی تو مسجد یا الله صبح می شود همه درهایی از دره. در خونهاش هر در رو داشت مسجد از جانب خدای تعالی دستور آمد تمام درهایی که دو مسجد بازه همه باید ببندن فقط در خانه تو و در خانه علی فقط باز باش دونه دونه پیغمبر فرمود از این باش در خونه تو ببند دونه در خونه تو ببند یکی نوعه میگم عمر گفت اشتیه رسول الله چهش فعصم و تا هر ولی من خیلی دوست دارم که شما رو مثلا ببینم که سوراخی اجازه بدیمونی بگرم این فرمود دیگر فرمود نمیشه, نمیشه. خلاص عباس امون پیغمبر آمد فرمود در خونه تو باید ببندی از فدیار رسول الله چطور من ببندم این مثلا شرافت و فضیلتی برای من نباشه علیه مثلا چنین شرافتی داشته باشه حالا ارز میکنم فرمی دستور خداس بالاخره درباره باره عباس اجازه دادن که از پشتگون خونش یه ناودون تو مسجد داشته باشه ناودون داشته باشه که در زنه اومد اومد خلافت اومد اومد راحت بشه یه آب از اون ابدوم کله اومد و از سور حتی آخه پیغمبر این گذاشته بود و شایدم لعنت کرده بود کسی رو که این برداره پاسلو در بدوشنن اپوسن ابواخر عمرش بود پیرمرد شده بود اما به من باغی بودی ما علی یا علی من شرافتم هم. به همین مرد بود که پیغمبر به من اجازه داد به من این شرافت عظیمی بود که همه اصحاب حتی که عمر دستو دادوش امیرالمومنین شمشیر را در دست باکمند فرمود قام بر این مافتون گردند اس به هر کسی دست بزنم کشت این شرافت که رسول الله بهی دارده و لعنت کرده کسی که به داره باید خبر دادن به عمر که اومده قمبر رو ورده و اینجنابگی نصب کرده فرمون عمر گفتش به این ما اول حسن ناراحتش نمیکنون خیلی خود بزر باش خیلی خلی خلی من مقصودم سر این کلمه بودش که همه در درها رو فقط در خانه علی گازی و در خانه رسول الله دو تا در تو مستیده هست. خب هر کسی به قول بنده نمیزنه. این آقا که ای چطور این باید در باز باشه این باید بسته باشه شروع کردن منه او وقت رسول الله به فرمود فرمود به اینکه که این از رجال یا فی انفسهم همشه ان ان از تو علیم فیلی مسجد و اخراج تو هم. من مبینم در دلهای بعضی یک چیزیه که همه رو از مسجد بیرون کردم فقط علی رو گفتم بمانه والله ما اخرجتهم تو و از قسم به خدا من شماها رو بیرون نکردم و علی رو ساکن کنم بالمنه تبارك وتعالى اسكنه و, و اخراجكم خدا دستور داده ان الله تعالی او حضرت فرمود او ان الله تعالی او ها ای و اخی ان و ال قومكم به مصر بدون تکم وجه ال قبلا بعدن فرمود این علیه منی به منزلت هاری من نیوسا خبه اخی خب تمام درای بستن فقط در خانه علی بازه و مسجد را کسی جنوبی حق ندارد در این مسجد جنوب قبور کند مگر من و علی و خانواده منو بر این وقت در زیل این فرمود انتمنی به منزلت حارون و نوسا مقصود که شما در دهار مراجعه بفرمانید در جاهای مختلف و متعدد مطلب فرموده منحصره به قضیه تبوک نیست و قضیه تبوک هم خودش کافیه برای مطلب ما و مقصد ما ولی منحصره به قضیه تبوک نیست در مرورد مختلف و متعدد این روایت از این روایت است که من و شما و هر کس که بخواد طالب حق باشه این روایت است از رسول الله سلم شیعه نقل کردن و به من معیم میکنه که از کی اخذ کن و دنبال کی باش و پیرو از چه مکتب و مرامی باش عملت مطابق چه ای باشد و اعتقاد مطابق اعتقاد کی باشد، اونی که از رسول الله گرفته اونی که به منزله هارون است نسبت به نمسا اونی که شریک در عمر رسول الله اون که وزیر رسول الله سلام آلان